عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. زمن بررسی کتاب مقدس به نیمه کتاب مقدس رسیدیم. به آخرین کتاب از عهد قدیم که کتاب ملاکی هست. به پایان عهد قدیم میرسیم و تشکر میکنیم که وفادارانه در این سفر کلام خدا با ما هم راه بودین. دعای ما اینه که این درس ها شما رو در ایمانتون تشویق کرده باشه و به این درک نایل بشید که خدا شما رو میشناسه، دوست داره و ای برای شما داره. در درس امروز ما روش جالبی رو یاد خواهیم گرفت که ملاکی نبی برای دادن پیغام خدا به کار گرفته برای کسانی که نمیخواستن به اون گوش کنن. با هم به درس امروز گوش میکنیم. برای اینکه از زمینه تاریخی که ملاکی در اون معزمی کرد آگاهی داشته باشید به این سخنان نهمیا گوش کنید. نهمیا حسار اطراف اورشلیم را دقیقا زمانی بازسازی کرد که ملاکی معزه می کرد. نهمیا حاکم قوم یهود بود و قوم برگزیده رو به عنوان یک رهبر اجتماعی و یک رهبر روحانی هدایت می کرد نهمیا در باب سیده اینطور میگه. در آن روزها نیز بعضی یهودیان را دیدم که زنان از اشدودیان و امونیان و معابیان گرفته بودند و نصف کلام پسران ایشان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 سبک رهبری او رو شرح میدن این روشی بود که نهمیا مشکلات مردم را در اون دوره حل میکرد مشکلی که نهمیا سعی میکرد حل کنه این بود که یهودیان با قوم غیر یهود که در سرزمین مقدس زندگی میکردند ازدواج کرده بودند نتیجه این ازدواج ها این بود که بچه هاشون حتی زبان یهودی که زبان قوم خدا بود یاد نگرفته بودند در دوره نهمیا قوم یهودا مشکل طلاق و بسیاری مشکلات دیگه داشتند. من اینها رو ذکر می‌کنم به خاطر اینکه حالا ما به آخرین کتاب از کتاب مقدس رسیدیم که کتاب ملاکی نبی هست. ملاکی تقریبا همزمان با نحمیا زندگی می‌کرد. در این کتاب کوچک ملاکی روش منحصر به فردی رو برای موعظه به کار می‌بره. ملاکی هم به همون مشکلاتی اشاره میکنه که نحمیا در آیات فوق به اونها اشاره کرده بود. برای اینکه دیدگاهی تاریخی به دست بیاریم لازمه که بدونید سه نبی آخر عهد رو انبیاه بعد از اسارت لقب دادند چون که اونها بعد از بازگشت قوم خدا از اسارت بابل به عرصه اومدند. بذارید یک بار دیگه تاکید کنم که اسارت بابل نقطه عطف تاریخی مهمی در تاریخ قوم یهود بود تمامی انبیا به این ترتیب بندی شدند انبیا قبل از اسارت انبیا حین اسارت و انبیا بعد از اسارت سنبی آخر در عهد قدیم حجای زکریا و ملاکی همگی انبیا بعد از اسارت هستند اونها بعد از بازگشت قوم یهودا از اصارت بابل زندگی و خدمت میکردن. هجعی و زکریا در زمان بازگشت اولین گروه از اسرا زندگی میکردن و هدف و مأموریت اونها بازسازی معبد بود. هجعی بیشتر اهل عمل بود و معزه میکرد قوی باشید و کار کنید. اولویت هاتون رو درست کنید و معبد رو اول بسازید. اما زکریا روی زیبایی داره و میگه کلید قدرت رویا هست. و زکریا پرده رو کنار میزنه و به قوم یهودا رویای باشکوهی از خدا میده چون زکریا میدونه که در رویای از خدا اونها قوت میگیرن و معبد رو با سازی میکنن و کار رو تمام میکنن یکصد سال از زمان حجع و زکریا که همزمان با هم زندگی و موعظه میکردند گذشته و حالا ملاکی بر آمده. یکصد سال زمان زیادیه ملاکی ده سال بعد از نهمیا و از را عسه اومده اما نه از را و نه همیا اشاره ای به ملاکی نکردن. ملاکی هم به همون مشکل اشاره میکنه که نه همیا به اون اشاره میکرد. چون اگرچه نه همیا به اون مشکلات به طور معکد اشاره میکرد، اما قادر نبود اون مشکلات را حل کنه. همون مشکلات ده سال بعد وقتی ملاکی موعظه میکرد، باز هم وجود داشتند. مشکلاتی که نه همیا و ملاکی اشاره کردن، مشکلاتی نبودند که قوم یهودا قبل از رفتن به داشته باشند. قبل از رفتن به اسارت، گناه اونها پرستی و مشکلات اخلاقی ناشی از بود پرستی بود. بعد از هفتاد سال اسارت بابل قوم خدا هرگز مانند قبل از اصارت به سوی پرستی باز نگشتند. قوم خدا درسشون رو یاد گرفتن. ارمیان نبوت کرده بود که اونها باز خواهند گشت و خدا اونها رو مانند زرفی میبینه که کوزگری ساخته اما باب میلش در نیومده. بنابراین اون رو میشکنه و خرد میکنه و از اون ظرفی تازه میسازه. سازه. ارمیا گفت که خدا با شما این کار رو خواهد کرد. او شما رو اینطور طور که از کار در اومدید دوست نداره. پس شما رو خرد خواهد کرد و شما رو به اسارت خواهد فرستاد. اما وقتی از اسارت برگشتید ظرف ای خواهید بود. خب قوم خدا ظرفهای ای بودن وقتی از اسارت برگشتن افراد کاملا متفاوتی بودند. اگرچه اونها کامل و بیگناه نبودند. گناهانی که توسط نحمیا از را و ملاکی به اون اشاره شده گناه هستند اما مثل گناه بت و فساد اخلاقی نیستند که انبیا قبل از اسارت موعظه میکردند مشکلی که ملاکی به اون اشاره کرده امروز ما بهش ارتداد میگیم وقتی نبوت ملاکی رو میخونید ملاحظه کنید که ملاکی خطاب به پادشاهی شمال یا پادشاهی جنوب موعظه نمیکنه چون دیگه دو پادشاهی وجود نداره وقتی ملاکی موعظه میکنه او فقط به قوم خدا اشاره میکنه مالاکی خطاب به قوم برگزیده خدا موعظه میکنه که تبدیل به قوم دل سرد خدا شدن. وقتی مالاکی خطاب به قوم یهودا موعظه میکنه، دلهای اونها نسبت به خدا سرد شده بود. مشکل اونها برگشتن از دین بود، به این معنی که از موضعی که قبلا داشتن فاصله گرفتن. ارتداد یا بازگشت از دین از مشکلات اساسی در سرتاسر سر کتاب مقدس هست. ارتداد مشکل اصلی امروزه قوم خدا هم هست. به اعتقاد من موعظه‌های ملاکی بسیار مرتبط با دوره ما هست چون مشکلاتی که ملاکی به اونها اشاره میکرد از نوع مشکلاتیه که واعظین امروزی هم به اونها اشاره میکنن. وقتی یک واعظ به حضار نگاه میکنه او چه چیزی در رابطه با نیازها و مشکلات و می بینه یک بار دیدم شبانی میگفت وقتی مقدسین بوده بشن کلیسای من اولین گروهی خواهند بود که روبوده میشن چون کلام خدا میگه کسانی که در مسیح مردند نخوست برخواهند خواست ملاکی نبی دیگری هست که سبک ادبی منحصر به فرد و زیبایی داره من سبک ادبی برخی از این انبیا رو خیلی دوست دارم حبقوق محبوبترین نبی من هست حبقوق یک مناظره با خدا داشت فکر می کنم که فرم ادبی زکریا هم زیباست عقیده زکریا این بود که بر مشکلات مرئی تمرکز کنه و بعد وقتی مردم میگن بله درسته مشکل اینه زکریا پرده رو کنار میزنه و میگه اما خدا رو ببینید چون خدا بزرگتر از مشکل شماست. ذکریا میگه نادیدنی ها رو ببینید. اما سبک ادبی ملاکی چیزی هست که میتونید بهش حاضر جوابی بگید شنیدم که خادمی در گینه نو سعی می که از زبان و فرهنگ انسانهای اولیه رو یاد بگیره. یک شبو و کنار آتشی نشسته بود که پسر 5 ساله ای به پدرش نزدیک میشه و سخنانی بینشون رد و بدل میشه. بعد از اینکه بچه صحبت میکنه پدر به توندی گردن بچه رو میگیره و دهانش رو پر از سنگ ریزه میکنه. بچه دور میشه در حالی که سنگ رو بیرون میریخت و سرفه میکرد و تف میکرد. خادم از پدر میپرسه مسئله چی بود؟ اونجا خادم کلمه جدیدی یاد میگیره. پدر گفت بچه حاضر جوابی کرد. من به بچه گفتم کاری بکنه و او جواب منو برگردون پدر احساسش رو درباره اون حاضر جوابی اون طور به بچه نشون داد من فکر میکنم که او منظور خودش رو حالی کرد. نظریه ای هست که میگه سبک ادبی کتاب ملاکی همون حاضر جوابی هست. ملاکی پیامی برای قوم خدا داره اما هر بار که سعی میکنه پیغامش رو به قوم خدا بده اونها جوابش رو برمیگردونند. در کتاب ملاکی هفت بار حاضر جوابی قوم خدا رو میبینید. به عنوان یک پدر یا مادر اگر سعی کنید با یک نوجوان صحبت کنید مطمئن میدونید حاضر جوابی چیه. آیا تا نوجوانها؟ در جواب پستادن به شما چقدر مبتکر هستند؟ اگر پدر و مادر حکیمی باشید و آدم منضبطی باشید، هرگز با یک نوجوان بحث نمی کنید، فقط به اونها طوری پیشنهاد میدید که نتونن مخالفت کنند. محکم باشید و بحث نکنید. کسانی که نوجوانی پرورش دادن می فرم ادبی کتاب ملاکی رو درک کنند. بیایید به این حاضر جوابی در کتاب ملاکی نگاه کنیم و ببینیم. ملاکی میخواد پیامش رو چطور از لابلای این حاضر جوابی ها به خدا بده؟ وحی کلام خداوند درباره اسرائیل به واسطه ملاکی خداوند میگوید که شما را دوست داشتم اما شما میگویید چگونه ما را دوست داشتید؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و خداوند میگوید که یعقوب را دوست داشتم و از عیسو نفرت نمودم و کوهای او را ویران و وی را نصیب شغال های بیابان گردانیدم چون که ادوم میگوید من هدم شده‌ایم ما خواهیم برگشت و ها را بنا خواهیم نمود. یهوه سبایوت چنین میفرماید، ایشان بنا خواهند نمود اما من منهدم خواهم ساخت و ایشان را به سرحد شرارت و به قومی که خداوند بر ایشان تا به ابد غضبناک میباشد مسما خواهند ساخت و چون چشمان شما این را ببیند خواهید گفت خداوند از حدود اسرائیل متعزم بود این اولین قسمت از پیام ملاکی هست که به شکل حاضر جوابی اومده. تکی خداوند بر کلامش توسط ملاکی این هست. خداوند میگوید که شما را دوست داشتم. وقتی این انبیا رو بررسی کنید، آیا توجه کردید که پیام انبیا چیزی فراتر از آتش و سولفور و بلاب و تاریکی بوده؟ اگرچه ها فکر میکنند که این تنها چیزیه که انبیا باید بگن. من بارها و بارها مشاهده کردم که این انبیا انبیای امید بودند. هر کدام از نبوتهای اونها با پیامی از امید خاتمه پیدا میکنه پیام امیدی که انبیا موعظه می‌کردن تنها امیدی بود که قوم خدا داشتن. انبیا همینطور طور پیام محبت خدا رو هم موعظه می‌کردن. تمامی این انبیا خدای مهربونی رو به قوم یهودا نشون می‌دادن. به قول انبیا چون خدا اونها رو دوست داشت، اونها رو تنبیه کرد و به اسارت بابل فرستاد و چون اونها رو دوست داره، اونها رو از بابل برمیگردونه. بسیاری از مردم فکر میکنند که شما تا به متا پنج، شش و هفت موعظه سر کوه نرسید، خدای محبت رو ملاقات نمی کنید. اما کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه خدای محبت رو به ما نشون میده. ده. تکه خداوند بر کلامش توسط ملاکی این بود. خداوند میگوید گوید که شما را دوست داشتم. نمی دونم آیا تا حالا واقعا محبت خدا رو درک کردی؟ کتاب مقدس به ما میگه باید خدا رو بشناسیم. مرد بزرگ خدا فریاد میزنه آه من باید او را بشناسم این حقیقت زیبایی هست که باید روش متمرکز بشیم آیا شما همین این را در کتاب مقدس ملاحظه کردید؟ کتاب مقدس میگه خدا شما را میشناسه در مزمور 139 داود میگه تو از نشستن و برخواستنم آگاهی او تعداد موهای سر شما را میدونه خدا از هر روز زندگی شما آگاه او شما را میشناسه این هم حقیقت بزرگیه این فرق میکنه که من بگم من رئیس جمهور و یا نخست وزیر رو میشناسم و بعضی ها شاید وقتی این رو بشنون تحت تاثیر قرار بگیرن اما اگر رئیس جمهور و یا نخست وزیر توی تلویزیون بگه من فلان واعظ چشم قهوه‌ای نقش رو میشناسم و اسم منو به زبون بیاره این بیشتر مردم رو تحت تاثیر قرار میده وقتی خدا در مزمور 139 میگه من تو را میشناسم و از نشستن و برخواستنت آگاهم آیا این بهتر از اون نیست که من بگم او رو میشناسم؟ من و شما باید خدا رو بشناسیم اما بذارید چیزی حیجان بهتون بگم خدا شما رو میشناسه خدای خالق کهکشانها شما رو سمیمانه میشناسه کتاب مقدس همین طور میگه باید خدا رو دوست داشته باشیم این هم حقیقت مهمی هست اولین و مهمترین فرمان اینه که خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی فکر و با تمامی جان محبت کنید اما کتاب مقدس این رو هم به ما میگه و به لحاظ این حتی حیرت تره. خدا شما رو دوست داره این مهمه که ما درک کنیم خدا ما رو دوست داره سوالی که من از اغلب مردم از جمله قضات و روانشناسان میپرسم اینه آیا فکر میکنید موردی هست که امیدی به اون نباشه؟ آیا تا حالا به موردی که امیدی به اون نیست برخورد کردید؟ یه قاضی جواب داد بله من برخورد کردم مردی بود که هرگز کسی با او محبت نکرده بود و او مطلقاً ناتوان از این بود که کسی رو محبت کنه امیدی نمی رفت که بتونه کسی رو دوست داشته باشه چون کسی او رو محبت نکرده بود خودش رو بسته و کلیدش رو دور انداخته بود او ناامید بود بعد از من پرسیدند که چرا من وارد خدمت شدم من گفتم میخوام وارد خدمت بشم چون ایمان دارم که پیامی برای انسان ناامید دارم و پرسید پیام چیه؟ گفتم خدا شما رو دوست داره. قاضی پیر مدتها خیره به من نگاه کرد و گفت اگر تو بتونی این پیام رو به افراد ناامید بدی و اونها رو نسبت به این حقیقت متقاعد کنی، شاید بتونی پیامی برای افراد ناامید هم داشته باشی. اگر کسی شما رو دوست نداره، اگر کسی تاکنون شما رو محبت نکرده، شما نمیتونید محبت کنید. ناامید هستید. شما میتونید به یک قاتل بیمارگونه تبدیل بشی. میتونید مثل شخصی بشید که قاضی گفت خودش رو بسته با کلیدش رو دور انداخته اما اگر بتونیم این پیام رو به شما برسونیم که کسی شما رو دوست داره اگر بتونید باور کنید که خدا شما رو دوست داره و عملا محبت خدا رو تجربه کنید دیگه یک شخص ناامید نخواهید بود این پیامیه که ملاکی میخواد به گوش قوم یهودا برسونه خداوند میگه که شما رو دوست داشتم اما شما با حاضر جوابی میگید واقعاً چطور ما رو دوست داشتی ما باور نمی کنیم که ما رو دوست داشتی بسیاری از ازدواج ها به فلاکت منتهی میشن چون یک زن نمی تونه شوهرش رو متقاعد کنه که او رو دوست داره او احساس خودکمبینی داره چنان احساس بیارزشی می میکنه که وقتی زنش میگه او رو دوست داره باور نمی کنه. او میگه هیچ کس منو دوست نداره من لایق محبت نیستم باور نمیکنم که کسی منو دوست داشته باشه ببینید خدا سعی میکنه شروع تازهی با قوم یهودا داشته باشه خدا سعی داره در اونها بیداری به وجود بیاره خدا سعی میکنه اون بیداری رو با گفتن دوستت دارم شروع کنه اما مردم یهودا با حاضر جوابی محبت خدا رو نسبت به خودشون انکار میکنن آیا باور میکنید که خدای قادر مطلق شما رو دوست داره عیسی منو دوست داره من میدونم چون کتاب مقدس اینو به من میگه آیا تا حالا کسی این حقیقت رو با شما در میون گذاشته؟ آیا تا حالا کسی کانالی برای انتقال محبت مسیح برای شما شده؟ من اعتراف می کنم که سالها طول کشید تا اسم خودم رو در این جمله عظیم کتاب مقدس قرار بدم. خدا اونقدر منو محبت کرد که یگان پسرش رو داد که هر که به او ایمان آورد یعنی من به او ایمان بیارم هلاک نگردد بلکه حیات ابدی یابد. باور کردن به آیه‌ای که از یوحنا شانزده براتون نقل کردم یک چیز و باور کردن به اینکه خدا و عیسی مسیح و روح القدس منو دوست دارن یک چیز دیگه هست من باید باور می کردم که گروهی از ایمانداران مهربون منو دوست دارن کسانی که نه تنها سخنگوی مسیح بودن بلکه کانالی برای انتقال محبت عملی نسبت به من هم بودن میخوام یه سوالی ازتون بپرسم آیا تا حالا کانالی برای انتقال محبت مسیح برای دیگران شدید که اونها رو متقاعد کنید که خدا عیسی و روح القدس اونها رو دوست دارن سبک ادبی کتاب ملاکی مانند پدر یا مادری هست که سعی می کنند با بچه حاضر جوابشون صحبت کنند. دومین مثال از حاضر جوابی در نبوت ملاکی باب یک آیه شش هست. پسر پدر خود و قلام آقای خیش را احترام می نماید. پس اگر من پدر هستم احترام من کجاست؟ و اگر من آقا هستم حیبت من کجاست؟ یهوه سبایوت به شما تکلم می کند ای کاهنانی که اسم مرا حقیر می شماری. و میگویید چگونه اسم تو را حقیق شمردهایم؟ حقیق شمردن نام خدا یعنی چی؟ کتاب مقدس میگه که وقتی عیسی تعلیم میداد که چطور باید دعا کنیم اینطور گفت. ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد. این اولین چیزیه که وقتی دعا می کنیم باید بهش فکر کنیم. منظور ما از دعا کردن و درخواست هامون باید این باشه که نام خداوند مقدس داشته بشه. در ده فرمان گفته شده که نام خداوند خدای خود را به باطل نبرید. وقتی کتاب مقدس به نام خدا اشاره میکنه منظورش چیه؟ نام نشان ماهیت و هویت هر کسی هست. اسامی خدا در کتاب مقدس مثل خدای قادر مطلق که زکریا و بار اون رو به کار برده چیزی درباره خدا به ما میگه. اون اسامی ماهیت خدا رو به ما نشون میدن. بنا به گفته موسی و عیسی ما خلق شدیم که به تمام دنیا نشون بدیم که خدا چه شکلی هست؟ مقرر هست که ما خدا رو احترام کنیم، متبارک بخوانیم، و تکریم کنیم. ما باید خدا و ماهیت وجود او رو بپرستیم. حالا وقتی گفته میشه ما نام او را بی حرمت می کنیم یعنی ماهیت وجود او رو بی حرمت می کنیم. این دومین اتهامیه که ملاکی وارد میکنه و قوم یهودا انکار می کنند. اونها میپرسند چگونه چگونه اسمت را حقیر شمارده ملاکی پاسخ میده وقتی نان نجس بر مذبه من میگذارید و قربانی های معیوب به حضور خدا میارید. قوم میگن کی ما چنین کاری کردیم؟ خدا به ملاکی میگه به مردم بگو آیا این درسته که حیوانات کور و لنگ و بیمار رو برای قربانی من میگذرانن؟ آیا این قبیه نیست؟ آیا این رفتار رو با حاکم خودتون بکنید و چنین هدایایی به او بدید؟ او چی کار میکنه؟ ازتون راضی میشه؟ خدا به ما رحمت داره شما میگید خدا نسبت به ما بخشنده هست، اما وقتی هدایای آنچنانی برای خدا میارید، چرا باید او به شما لطف بکنه؟ کاش یکی از شما میبود که درها را ببندد تا آتش بر مذبح من بیجا جا نیفروزید. یهو و سبایوت میگوید در شما هیچ خوشی ندارم. نام من در سرتاسر سر دنیا عظیم خواهد بود. من پادشاه عظیمی هستم و شایسته هدایای معیوب نیستم. اونها متهم شدهاند که قربانی های معیوب به حضور خدا میارند. ملاکی قوم خدا رو به چالش میکشه که وقتی این هدایا را رو به حضور حاکم خود میبرند آیا او از اونها راضی خواهد شد؟ امروزه این را چطور در زندگی های خودمون میپذیریم؟ یکی از راهایی که ما امروزه به خداوند هدیه میدیم چیزی هست که در سینی هدایا قرار میدیم. چند نفر از مردم وقتی سینی هدایا میچرخه به خداوند هدیه میدن؟ وقتی خدا به پایین و کلیسای ما نگاه میکنه و کارهایی رو میبینه که ما برای کسب درآمد برای کلیسا میکنیم همون احساسی رو داره که وقتی ملاکی پیامش رو می کرد داشت میگه شما قربانیهای معیوب به من تقدیم میکنید من پادشاه بزرگی هستم و شما نام مرا را بی حرمت میکنید و قربانیهای معیوب به حضور حضورم میاریید کاش یکی از شما بود که درها را ببندد تا آتش بیهوده بر مذبح من نیفروزید همونطور که حاجی در موعظهش میگفت اگر مردم به لحاظ مباشرت خدا رو جلال بدن، اگر خدا رو در اولویت قرار بدن، باید آنچه که نوبرانه و بهترینشون هست به خدا بدن. نه اینکه وقتی سینی هدایا میچرخه چند دلاری به خدا بدن. خدا نه تنها ده یکش رو میخواد، بلکه باید بفهمیم که خدا اسمی داره و هر چیزی که ما داریم و هر چیزی که هستیم میخواد. اگر خدا رو در دادن هدایا و ده ها در اولویت قرار بدیم اون وقت لازم نیست که ما برای تأمین منابع مالی کلیسا، شام کلیسایی، بازار و از این کارها بکنیم ملاکی در ادامه میگه شما فریاد میزنید ما فرزندان یک پدر هستیم و یک خدا ما رو خلق کرده اما عهد پدران خود را بی حرمت کردیم و با یکدیگر خیانت میورزیم و دختران خدای بیگانه رو به زنی گرفته ایم. پس چرا خدا ما رو ترک کرده؟ من بهتون میگم چرا چونکه خداوند خیانت شما رو در طلاق زنهاتون دیده زنی که سالها به شما وفادار بوده شریکی که قول داده بودید از اون مراقبت و نگهداری کنید خدا شما رو با زنتون پیوند داده در نقشه حکیمانه خدا وقتی ازدواج کردید شما دوتن در نظر خدا یکی شدی، و او چی میخواد؟ او فرزندانی خداشناس از قوم شما میخواد بنابراین مراقب امیالتون باشید با همسر سالهای جوانیتون. وفادار باشید چون خداوند خدای اسرائیل میگه که از طلاق و از کسی که ظلم میکنه نفرت داره بنابراین امیالتون رو کنترل کنید و دیگه زنهاتون رو طلاق ندید شما با حرفهاتون خدا رو خسته کردید. میگید چطور او رو خسته کردی؟ از اینکه گفته ایید همه بدکاران به نظر خداوند پسندیده می و او از ایشان مسرور هست امروزه همین مثال خاص حاضر جوابی که در نبوت ملاکی هست به صورت بارزی دیده میشه طلاق در فرهنگ ما تقریبا موضوعی فراگیر شده. در فرهنگهایی نظیر فرهنگهای فرهنگ, فرهنگ کلیسایی امروز وقتی طلاق به صورت اپیدمی در میاد، مردم به گام بعدی می‌رند. ملاکی اینجا شرط داده و میگه بدکاران به نظر خداوند پسندیده میباشند و او از ایشان مسرور است. به عبارتی خدا از طلاق خوشنوت است. وقتی که ملاکی به طلاق در دوران خودش به صورت یک اپیدمی اشاره میکنه، او هم درست مثل عیسی به ریشه برمیگرده همون کاری که عیسی در انجیل متا کرده وقتی که مردان مذهبی با عیسی مواجه شدند و از او در مورد طلاق پرسیدند عیسی گفت اگر میخواهید ازدواج و طلاق را اونطور که باید بدونید به دوره موسی برگردید و ببینید ازدواج و طلاق چگونه بود عیسی به ابتدای آفرینش برمیگرده و میگه ببینید قصد اصلی خداوند چی بود وقتی او ازدواج خانواده رو بنا کرد هدفش چی بود؟ ملاکی هم همین کار رو می کنه ملاکی میگه وقتی شما در حضور خداوند عهد کردید و اون زن رو به همسری گرفتید، هدف خداوند از اون چی بود؟ این بود که فرزندانی برای قوم بیارید کسی که مسیحی متعهدی هست و آتیه نویسندگی داره، باید کتابی در زمینه ی حقوق فرزندان بنویسه. چون بنابه به گفته کتاب مقدس فرزندان حقوق دارن. فلسفه اومانستی امروز به جایی رسیده که ما بیشتر نگران و حقوق خودمون هستیم و میگیم من حق دارم که تصمیم بگیرم با بدنم چیکار باید بکنم و چیکار نکنم بنابراین اگر بخوام بچه ای رو که در بدن من شکل میگیره بکشم این به خود من مربوطه چون این بدن مال منه و من حق دارم خیلی ها وقتی به مسئله طلاق اشاره میشه همین عقیده رو بیان میکنن. من قرار نیست که با کسی زندگی کنم که پیش او احساس شادی نمیکنم من حق دارم که شاد باشم. بنابراین اگر ازدواج من رو به سردی رفته و پوچ شده، من حق دارم که شریکم را عوض کنم و به طرف کسی برم که منو شاد بکنه. خدا میگه نه. خدا شما رو به زنتون پیوند داده و از طلاق نفرت داره. حالا چه کسی از طلاق بیشتر رنج میبره؟ فرزندان کسانی هستند که بیشترین ها رو از طلاق میبینن. وقتی خدا ازدواج بنیان نهاد، قصدش این بود که دو نفر رو کنار هم قرار بده. تا اونها شریک باشند و والدینی برای فرزندانشون باشند. بعد به عنوان والدین اونها کسانی رو به وجود بیارند که اونها هم روزی خودشون والدین کسان دیگری باشند. این قانون زندگی هست که به خانواده بشری تولد قوت و مسیر میده این قانون خداست که در باب اول کتاب پیدایش تدوین شده امروز ما بینش خودمون از قصد خداوند برای ازدواج را از دست دادیم همونطور که ملاکی در پیامش اشاره کرده هدف خداوند از ازدواج این نبوده که شما شاد باشید و همسرتون رو شاد کنید هدف خداوند از ازدواج دوام و بقای خانواده بشری بوده مفهوم کلی ازدواج این هست شما باید در ازدواجتون بر خدا و بر همسرتون متمرکز بشید باید از خودتون بپرسید قصد خدا از ازدواج من چی بود یادمه که یک بار با زوج بسیار پیری ملاقات کردم که 50 سال از ازدواجشون میگذشت و چهل و هشت سال بود که در چین خدمت میکردند. وقتی از اونها پرسیدم آیا تا به حال در زندگیتون به طلاق فکر کردید؟ شوهر پیر پاسخ داد اوه نه نه. همسرش با شوخی گفت بارها به فکر کشتن همدیگه افتادیم اما به فکر طلاق نیفتادیم. چرا مردم به فکر کشتن میفتن اما به فکر طلاق نیفتن؟ اونها به طلاق فکر چون که این دیدگاه رو دارن. وقتی ازدواج کردند نسبت به خدا و همدیگر متعهد شدند که فقط مرگ میتونه اون تعهد رو از بین ببره. اونها میدونن که خدا از طلاق نفرت داره. چرا؟ چون وقتی به آسانی طلاق بگیریم نقشه خدا به کلی در هم می ریزه. این زوج خادم پیر هرگز به طلاق فکر نکرده بودند چون که به حقوق فرزندان واقف بودند که اونها حق دارند 20 سال اول زندگیشون رو در خانه ای شاد پرورش پیدا کنن. در دوره ملاکی و در دوره ما وقتی طلاق شایع میشه وقتی امری عادی برای همه میشه مردم اخلاقیات و الهیات جدیدی ابدا می کنند که درد گناهون ها رو کاهش بده این الهیات ابدا شده تا مردم بتونن با آرامش با گناهشون زندگی کنن برخی ها به اون الهیات اخلاقیات جایگزین میگن در هر نسلی میشه صدای نبی رو شنید که فریاد میزنه راستی هنوز راستی است اگرچه کسی اون را انجام نده و گناه هنوز گناهه اگرچه همه مرتکب اون بشن مثال بعدی ملاکی از حاضر جوابی اونجاست که قوم یهودا رو متهم میکنه که اخلاقیاتی ابدا کردند که اون رو به عنوان داروی مسکن برای کاهش دردهای روحانی ناشی از گناه به کار میبرند شما از ایام پدران خود از فرایز من تجاوز نموده آنها را نگاه نداشته اید اما یهو و سبایوت میگوید. به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما باز خواهم گشت اما شما میگویید به چه چیز بازگشت نماییم چند بار سعی کردید مسیح را رو به روش مؤثری به مردم معرفی کنید و در پاسخ شنیدید که میگن من هیچ مشکلی ندارم من شهروند خوبی هستم و یا میگن من که نمیخوام کشیش بشم همینجوری من خوبم میدونید اون افراد نیاز دارند که تولد تازه پیدا کنند اما همیشه جواب میدن من که هرگز از خدا دور نشدم شما سعی می‌کنید بهشون بگید به سوی خدا بازگردند و اونها میگن ما که از خدا دور نیستیم این همون حاضر جوابی بود که ملاکی هاش روبرو بود مطمئنم که احتمالاً شما با قسمت دوم پیام ملاکی آشنا هستید آیا انسان خدا را گول زند اما شما مرا گول زده اید و میگویید در چه چیز تو را گول زده اید در اشها و هدایا شما سخت ملعون شده اید زیرا که شما یعنی تمامی این امت مرا گول زده اید. همامی آش ها را به مخزن من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه سبایوت میگوید، من را به این طور امتحان نمایید که آیا روزنه آسمان را برای شما نخواهم گشت و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. این یکی از معدود جاهایی هست که خدا در کلامش میگه منو امتحان کنید. وقتی شیطان عیسی را در بیابان وسوسه میکرد، عیسی اینطور داد نوشته شده از خداوند خدای خود را آزمایش نکن. ما نمیتونیم خدای خودمون را امتحان کنیم. این حق مختص خداست که ما را آزمایش کنه. ما نمیتونیم او را امتحان کنیم. ولی این جاییه که خدا میگه مرا اینطور امتحان کنید که آیا روز های آسمان را برای شما باز نخواهم کرد؟ و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. منظور از دادن ده یک فقط دادن ده درصد نیست. ده یک اولین ده درصد از درآمد شماست. ده یک روش عینی این هست که بگیم خدا در زندگی ما اول هست. قوم اسرائیل با دادن دهیک یک هر چیزی نشون می که خدا در سطر زندگی اونها هست. به غیر از ده یک قوم اسرائیل به خدا هدیه هم می دادن. اونها قربانی می کردن. وقتی به عهد جدید می رسید مفهوم مباشرت این هست که همه چیز از آن خداست و من فقط مباشر هستم. و روزی باید برای تمامی چیزهایی که داشتم حساب پس بدم. به هر حال خدا اینجا به ما اجازه میده که او رو امتحان کنیم تا به ما ثابت بشه. اما ملاکی اینجا نگرش دیگری به ده یک داره و اون رو دزدی از خدا قلمداد میکنه. در آخرین مثال حاضر جوابی در پیام ملاکی او میگه خداوند میگوید به ضد من سخنان سخت گفته اید و میگویید به ضد تو چه گفته ایم گفته اید است که خدا را عبادت نماییم. و چه سود از اینکه عوامر او را نگاه داریم و به حضور یهوه سبایوت با حوزن سلوک نماییم و حال متکبران را سعادتمند میخوانیم و بدکاران نیز فیروز میشوند و ایشان خدا را امتحان کنند و معهازا ناجی می گردند وقتی مثالهای حاضر جوابی در کتاب ملاکی را مطالعه کنید مایلم که نظرات جالبی رو به شما ارائه کنم در جلسه بعدی میخوام به شما نشون بدم که چطور هفت مثال از حاضر جوابی در راستای همون چیزی هست که پروفسور جیمز هاچ استاد دانشگاه بین المللی در کارولینای شمالی به اون هفت نجوای دل برای سردی از خدا میگه. مثالهای ملاکی گامهایی رو به تصویر میکشه که مردم با برداشتن اون گامها رفته رفته از خدا سرد میشن. دل سردی از خدا چیزی نیست که یک بار اتفاق بیفته. قلبی که نسبت به خدا سرد شده نتیجه نهایی یک پروسه هست که با باور کردن چیزهایی مثل خوشا متکبران به اوج خودش میرسه و یا با موعظه ها و رسیدن به عرضش هایی که کتاب مقدسی نیست شما حیرت میکنید و نمیدونید که چطور به جایی رسیدید که چنین چیزهایی رو موعظه میکنید وقتی کسانی که زمانی رابطه گرمی با خدا داشتن به جایی میرسن که رابطه شون با خدا سرد شده لازمه که بفهمن این لغزش و افتادن به ارتداد چیز ناگهانی نبوده ارتداد رفته رفته پیش میاد پله به پله اگر این هفت مثال حاضر جوابی رو در کتاب ملاکی مطالعه کنید میبینید که اون مثل گفتگویی بین خدا و فرزند خداست و میبینید که چطور به طور فضایندهای روابط با خدا سرد میشه شما میتونید به این مرحله هفت گام برای فرسودگی روحانی بگید امروز ما عبارت فرسایش و خستگی رو به کار میبریم مردم چطوری فرسوده میشن؟ حاضر جوابی در سبک ادبی کتاب ملاکی به شما نشون میده که چطور فرزند خدا فرسودگی رو تجربه میکنه. هر بار که خدا سعی میکنه قومش رو توسط ملاکی به طرف خانه خودش بکشه اونها به صورت ای واکنش نشون میدن. حاضر جوابی میکنن و میگن تو چطور ما رو دوست داشتی؟ چطور ما تو رو خسته کردیم؟ چطور تو رو گول زدیم؟ جوابهای قوم خدا، به شکایت خدا نشون میده که قلب اونها با خدا صادق نیست اگرچه خودشون فکر میکردن که روابط خوبی با خدا دارن وقتی به مطالعه ملاکی ادامه بدیم ما هفت گام سرد شدن روحانی رو خواهیم دید که لازم رهبران مراقب اون باشن امیدوارم در جلسه بعدی هم در ادامه درس ملاکی با ما همراه باشید دانش روی عزیز امیدوارم که جلسه آینده رو از دست ندید چون که ما میخوایم ضمن ادامه بررسی کتاب ملاکی که بسیار در زندگی های ما کار داره سفرمون در عهد قدیم رو نیز جمبندی کنیم. شاید روح القدس شما رو در عرصه از زندگیتون ملزم کنه که بخواید یک بار دیگه با خدا صحبت کنید. به ملاکی نبی گوش کنید. به خدا گوش کنید. به گناهانتون اعتراف کنید و بدونید که خدا با آغوشی باز منتظر ایستاده که شما رو ببخشه. تا برنامه بعدی امیدواریم که شما به شناخت محبت، شادی، فیض و رحمت خدا نائل بشید.